بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعی ان امروز به نظرم رسید به جای این پراکندگی یه بحث مبسوطی رو دنبال بکنیم و به یه جای برسیم هر حال بحث مفصلی باشه که این چند جلسه رو بگیم توحید تا قل است توحید ما مدخل این بحث یعنی محل ورود در این بحث این عرض که ابزار شناسایی ما در مسائل توحیدی چی باید باشه با چه ابزاری باید بارز این مباحث بشه اینها ما برای اینکه امتیاز اون روشی که ما داریم مشخص بشه بعد نیست به روش های مختلفی که در این زمینه آمده یه یعنی نگاهی بکنیم بعد روش اصلی خودمون که متکی به برهان و قرآنه عرض کنم که اینو روز تکیه بکن ما مودان مباحث توحیدی یه مباحث عقیدی است و موحدان کسانی هستند که از توحید ذات شروع می‌کنند میرسن به توحید صفات توحید افعال توحید عبادت اونجا متوقف میشن یعنی در واقع از توحید شروع میکنن به توحید میرسن من تا مراتب مختلف توحید رو همطور پیمی کنن و میپیمن ابزارتون هم عقل خالصه با وحی خالص که قرآن کریم باشه به این دوتا متکی و معتقدن که بین این دوتا اختلاف و تباوتی نیست حالا به تبسیر این رو از خواهیم کرد ولی این موضوع مخالفان متعدد داره سه دست مخالف رو در این جلسه مطرح می یه دست مذهبی هایی که اخباری مسلک هم اونا میگن که آقل حجته در مباحث دینی در مباحث الهی توحیدی یعنی چی؟ عقل کی؟ عقل من عقل شما عقل انشتن عقل نیوتن عقل کی در چه سنی در 20 سالگی 40 سالگی 50 سالگی عقل انسان تجربه می آموزه رشد میکنه پس عقل حجت یک امر تعریف دروتی حسابی نیست منظور شما اینه که عقل حجت در این مباحث چیه ما میدیم که مراد ما استدلال عقلی است وقتی که بگیم عقل حجته یعنی استدلال عقلی در که مقالطه توش نباشه حجت چه زن بگه؟ چه مرد؟ چه پیر بگه؟ چه جوان؟ چه انشتن بگه؟ چه آدم معمولی؟ استدلال عقلی چرا؟ که مقالطی نباشه یعنی مقالطه در اون راه نیفته باشه این حجته میگویم که آقای جان خطا درش راه داره استدلال عقلی بعضیش خطا هستند همه استدلال عقلی درست نیستن بنابراین این استدلال عقلی قابل اعتماد نیست جوابش این است که اولا این که شما می‌گید که استدلالات عقلی خطا هم داره دلیل بر این که شما نیروی عقلانیتون میتونه بین خطاب و ثواب تشخیص بده و اگر کسی صحیح مسئله ای رو بلند نباشه تو میتونی بگی این این مسئله غلط حل شده باید صحیح مسئله بلد باشه تو بید آقای مسئله بلند شما باید استردال صحیح رو بدانی تو بگه این استردالی که تو داری میگی مقالفه هست این صحیح نیست بنابراین همین که شما اقرار میکنید که در استدلالات عقلی خطا هم هست، صحیح هم هست معلوم شو قواه ادراکی شما تشخیص میتونه بده صحیح چه؟ این یک دوم این که مگر در حواس ما اشتباه نیست مثلا چشم ما آب نما رو یعنی سراب رو آب میبینه اشتباه میکنه دیگه حالا این دلیل بر این است که از بقیه مشاهدات همون همه چشم بکشیم. بگیم همه اش دیگه خطاست چون یه مورد خطاست. گیرم حالا عقل هم در بعضی از موارد خطا بکنیم. دلیل نمیشه به کلی از دلال عقلی چش بکشیم. ولی بله از چشم خودون هم باید چشم بکشیم. چون گاهی خطا میکنه مالای کوه که هستیم آدم ها رو قد مرچه میبینیم. این اشت آتشگردانی که میگردنیم یه حلقه آتشین می در درسته که این آتشگردان هر لحظه در یه نقطه است اون حلقه اشتباه چشمات که این نقاط و به هم وصل میکنه نمیتونه این رو در هر لحظه در جا ببینیم اشتباهات چشم اشتباهات دیگران گوش دیگر اعضا ولی حالا ما بیم چشمامون ریگه ببندیم شما ببینیم چند مورد ما... به خصوص که از کجا فهمیدی اشتباه کرده چشم برای که رفتی سعیش هم دیدی رفتی رو دیدی. آب نیست سراب بوده از کجا فهمیدی عقل اشتباه میکنه لابا سعیش هم فهمیدی که فهمید اونجا اشتباه بوده و سعیش هم میتونیم بفهمیم. پس عقل اون قدرت رو داره تو باید حواظت رو جمع کنه دوتار غلط نشه میگویدن اخباری ها نه تنها این استدلال ما نیست شریعت ما را از ورود در قیاسات عقلی معنع کرده برس کنم که شریعت گفته که نه اعتماد به عقل نکنین وقتی که وحی هست و رواویت هست و حدیث هست در کتاب الحداغ و که من از باقه های قدیمشی است داده سخن در این باره داده که شریعت ما رو نه از از که اعتماده به عقل جوابش این است که اولا اثبات حقانیت شریعت خودش احتیال به عقل ورزی داره از کجا امام صادق راست گفته از کجا و معصومه باید اثبات کنیم به قول این که خود او گفته من معصومم که شده اعتماد کرد باید دلیل عقلی بریم از کجا این کتاب یعنی قرآن مجید که می استناد بشت بکنی وحی الهی باشه بعد اول اثبات کنی با دلال عقیق بعد شاهد ازش بیری از چطور تو می دونی بگی شریعت ما رو از تعقل نه کرده به حالی که اثبات اصل شریعت با تعقل زیربنای شریعت تعقله بعد تعقل کنی تا اثبات خدا بشه تا اثبات قرآن بشه تا اثبات عمر دیگه بشه این یکی دوم این که اساس شریعت قرآنه در برابر اون روایاتی که شما دارین قرآنه که چند این بار میگه لالاکم تعقلون لالاکم یعقلون ام ارث کنم که به این الفاظ و بارها میاره تعقل کنید تفکل کنید چطور میشه چند کتابی با عقل ورزی مخالف باشه حتی در فروع لا لکن تشطفكرون لا في الدنيا آخره چه سوره بغله است یا ان في <تصفيق> ذلك لایات لنقوم يعقلون خیلی راحت قرهمی دو تای موردش نیست بنابراین چنین کتابی چطور میشه به حجیت عقل قائل نباشه این مال دسته اخبار مستقا دسته دوم صوفیاما نه تو میگن که آقا جان عقل ارز کنم که در اشتباه باید به کشف و شهور روی آبور برای کشف حقیقت مثلا مساهل الهلاهی حافظ در یکی از اشتارش گفته ما را زمن عقل ما ترسان ای حبیب کیون شری... شهنه در ولایت ما هیچ کاره نیست ما رو از منعقل نترسمون این شهنه ایست که در ولایت ارمان هیچ کاری از اصلا ما به این صوفیه جواب میدیم که اولا اولا این کشف و شهودی که شما میگین خودتون میگین کشف و شهود مانند رؤیا رمزگونه است یه چیزی میبینن رمزی توشه مثل خوابی که میوصف دید که 12 ستاره ماه و خورشید سجده میکنه واقعا 12 ستاره ماه و خورشید سجده نکرده نشه کشف رمزیه رمزشو همتون میگین اقل و سبب کر باید درکنه کنه رو بعد یعنی تطبیق دادن با حقیقت رو عقل باید اونطور دخالت کنه. پس بنابراین این، و شهود شما موکول به قضاوت عقله اون رمزیه رمزیش باید تفکر عقل باز کنه تطویق بده یک دوم این که هر نیروی فضای پرواز داره مثلا حس انسان تا یه مقدار میتونه اشجار در کنید صداها های یه مقدار ولی صداهایی که طول مورد خیلی کم پشورده است من رو درک ما نمی کنیم ممکنه درک کنیم هر موجودی هر نیروی میدانی داره گیرم که میدان پروازش کشف و شهود شما به پرزنگی درست باشه بالاتر از عقل باشه همون دلیل نمیشه که جلوی پرواز عقل رو بگیریم مثل این که من بگم چون با عقلی چیزایی میفهمم که با حس نمیفهمم پس حس من بذارم دور نه حسم برای خودش یه میدانی داره ازش وارد استفاده بشه عقلم یه میدانی داره تا در اون میدانش بعد جلو بره به پس کشت و شهود اونطور که شما ادعا دارید میدانش بالاتر باشه خیلی خوب نفع اینو نمی کنه <تصفيق> <تصفيق> کسی که رفته کلاس ششم کلاس 50 که, که نفع نمی کنه اون برای خودش کار خودش هم کار خودش میکنه. بنابراین دلیل نداری که عقل رو تخته بکنی و ارز کنم که برهان عقلی رو کنار بذاری در حالی که خدا گفتم اما کشفش اوتونم اگر تازه شیطانی نباشه درست باشه چون رمزیه رمزیش رو باید عقل و تفکر باز کنه تعویل صحیحش رو باید عقل و تفکر باز کنه که با حقیقت تطویق بده با مصداقش تطویق بده این دو دسته سوپیان بعد آبه بر این یه نکته دیگه هم بگه که کشف و شهود صوفی یه امر شخصیه نه اگه من یه چیزی کشف کردم برای من حجرته شما که این کشف نکردی، به شما که نمیتران منتقل کنم ولی برهان عقلی یه امر عمومیه برای هر کسی بگیم عقلش تصدیق بکنه این برهان رو یاد گرفته تصدیق کرده ما نمیتونیم یه امر خصوصی رو جا جور کنیم یه امر عمومی بکنیم کشف جهود یا احوال و پیش آمده ده چون چه می‌دونی این احوال چیه چجوریه این مال دسته دوم اخباری مرکزها صوفی مذهب دسته سوم علم زبگان هستن یعنی کسانی که در علوم تجربی کار کردن و می میگویم که هر امری به خواهد اثبات بشه و تو آزمایشگاه اثبات بشه بعد علوم تجربی فیزیک و چیمی و اینها اثباتش بکنن ما برای اینها معلوماتی قابل اعتماد به دست انسان نمی رسیم خیلی ها در اثر توسعه علوم تجربی این ان زده هستن به اصطراف تعبیر من کمان که یکیشون با من بحث میکرد من یه دلیل عقلی آوردم گفت دلیل عقلی مورد قبول نیست از کنم که باید دلیل علمی بیاری من به او چی گفتم من گفتم که همون علم شما زیر مناش عقله اگه بخوای عقل رو حسب بکنی علمت فرو بیرزه گفت چطور؟ گفتم ببینی؟ علم, علم فیزیک به ما میگه که هر جسمی در آب وزنش کاسته میشه. بارها تکرار کردیم. مثلا خزینه های قدیم که آدم میره، هاش از آب بلند کردن <تصفح> فضای آب هست تا میفهمیم وزنمون چطور شده. اینو ارشمیدس گفته درست. میگه هرگاه جسم وارد آب شد بعد از وزنش کاسته میشه. حالا منزه هم حتماً از وزنش کاسته میشه. برای به دوزیات قضیه نداره. خب آیا علم تمام اسلام رو برده تو آب این آزمایش کرده؟ یا یه مقدار اسلام رو برده برای این آزمایش کرده؟ بعد قانون کلی ساخته. اینجا عقده که قانون رو کلی می سازه. علم میگه اینو, اینو اینو اینو اینو بردم. حکم فقط راجعه هم اینا می تواند عقل که توسعه میدهیم که هر جسمی وارده هر آبی بشه از وزنش کاسته میشه. شما اسید تورفوری که با مثل ترکیب کردی با روی ترکیب کردی یه نتیجه گرفتی تمام اسید تورفوری عالم رو با روی مثل ترکیب کردی نه ولی قایده کلی. هرگاه اسید تورفوری به این نسبت با روی ترکیب بشه این نتیجه رو میده این هرگاه ها رو میگه. چه دلیل اینو میگه؟ چرا به خودش اجازه میده اینو میگه؟ با یه قانون داره حکم الامثال واحد حکم چیزهای مثل هم یکیست آقا در زنده هندسه حال کاری به هندسه فضایی ندارم در هندسه مستدهه تعریف دو خط مبازی که هیچ کافه هم درست؟ بر همین مبنی ها تشکیل شده از که به هم میرسیدن ترن سقوط میکرد دیگه خب این هیچگاه از کجا به دست بودیم؟ ما تا عبد دنبالیم دو خط رفتیم دیدیم نمیرسن؟ نه یه قاعده عقلی داریم چون قراره که این نسبتی که این جمعهدان احساس میکنیم هیچ وقت تغییر نکنه همیشه این نسبت برقراره پس هیچگاه به هم نمیرسه. تو اگه میخواستن برسن اینجا باید به هم برسیم وقتی که این فاصله هیچ وقت تغییر نمیکنه کم نمیشه زیاد نمیشه پس هیچگاه هم نمی اگه میخواستن برسن اینجا باید به هم برسیم پس ببینید روی استدلال عقلی این احکام کلی رو ما صادر می کنیم. پس علوم مبناش در قانون گذاری علم در قواعد علمی عقله علوم تجربی که حس گراست و تجربه گراست همون موردی که تجربه کرد هفت در برای اون رو بکنید وقتی اینکه همه این هم این حکم عقلش رو که میگه پس شما اگر بخواهید که حکم عقل رو خلال درش ایجاد کنید قبول نکنید علومتون رو میرسید قاید کلی نمیتونید درست بکنید این ها حکام عقلیه ما چطور میشه بگیم که از کنم که این علوم با عقل مخالف با قضاوت عقلی مخالف خودتون پرو میریزن پایر پس این شدن دسته سوم یه دسته یه فلاسپه جدید هستند که طرفدار جناب امانیل کانت بیتسوپ مشهور آلمان هم. کانت در قضایه هر نمیخوام فلسفه کانت رو کنم کنم خود خیلی با فلسفه من حال ندارم فقط به این موضوع اشاره میکنم در. کانت در فلسفه خودش گفته که عقل نمیتواند پرواز بکنه حقایق اشیا رو بشناسه همین نمودها و زواهر رو میبینه و از کنم بعد از ذهنیت خودش هم چیزهایی مثل مکان و زمان رو اینها بهش اضافه میکنه بداخره این طبیه. بنابراین به استدلالات عقلی نمیشه اعتماد کرد کانت سخنی گفته که جواب این است که اولا کانت عالم علوم تجربی نبوده شیمیدان نبوده فیزیکسان نبوده فیلسوف بوده فیلسوف با عقل کار میکنه میشه با عقل خود، عقل رو تخلیه کرد که نمیشه که اگه به عقل اعتماد داری که باید اعتماد کنی. اگه اعتماد نداری اصلا باید ابزار عقل نمیتونه حرف بزنی. یک فیلسوف ابزارش عقله. چطور میتونه عقل رو تختعه بکنه؟ ابزار دیگه نداره. نازان صرف میشه. باید توقف کنه، سکون کنه. چیزی نداره. بله. یک فیلسوف میتوانه بگه که عقل هم مثل قوای دیگر میدان پرواز داره همه چیز از او انتظار نه برداره به همه جا نمی رسید باعده. ممکره گفتیم در همه دینی دینیم کل کنهزاش خدا رو درک کنیم با عقلمون همه چیزها رو بپهمیم تا حدی که قدرت پرواز داره ما جلوبت داریم به خصوص که ما با وحیه که قانیتش به وسیله عقل اثبات شده هم آشنا هستیم و مرتباً از اون مدد میگیریم و به اصطلاح برهان و قرآن رو دو چراغ میدنیم که با این دلو بنابراین مسئله اینطوری تازه خود امانوهل کانت دلائل سگانه ای رو که برهان وجودی و براه این دیگه رو که فلاسفه قبلی آلمانی، آوردن و همین انگلیس پلاستان اونا رو نقد کرده ولی برهان علتقایی که رسیده توقف کرد. گفته دو چیز من رو همیشه امیدوار میکنه یکی همین نظام آفرینه که وجدانی که خدا در ما گذاشته این دو دوتا مثل دو شعنه است که بنابراین برهان نظام رو یه خورده اشکال برش گرفته نه اشکال اساسی چون خورده اشکال هم جواب داره به هر حال مفصول اینست که خود کانت هم در مسائل الهی و اینها به کلی ممکن نیست و جزء خلاسفه الهی حساب میشه نه جزء و ملحدین و مادین و زن آدقه و این حرفان برابر این مدخل بحث ما در ورود به مباحث الهی و توحیدی این است که بیان بکنیم ما با چه صلاحی وارد این مباحث می‌خوایم بشیم ما با صراحه صراحه عقل خالص همراه با وحی خالص می‌خوایم وارد این مباحث بشیم از توحید ذات شروع کنیم به توحید سپاس بیاییم از اونجا به توحید افعال از اونجا به توحیل عبادت متوکلمین کجا قرار میدیرم؟ متوکلمین که سانی هستند که اونا هم عقل و حجت میدانن ولی نقط درصد عقل و عقل میداره یه درست دوکان خب منم خب داره. من داره. همین نگاه میدارم میکرم بله بله بله. متوکلمین ایرادشون اینه که اولی اعتقادی پیدا میکنن حالا از هر راهی شده بعد میخوان با عقل اون اعتقاد رو اثباث بکنن فراسفه به اونا ایراد گرفتن گفتن عقل شما آزاد نیست عقل شما آزاد نیست قبل از اینکه به نتیجه برسید نتیجه قبول دارید ولی زن نمیتونید واقعیات رو کشف کنید پرق بین فیلسوف و متکلم اینه که متکلم از هر راهی شده اولی اعتقالی قبول میکنه بعد میخواد از اون دفاع بکنه با برهان برهان عقلی فیلسوف میگه نه ما از اول میخوایم ببینیم که حقیقت چه درست؟ روست قرآن من به ما یاد داده که پا بشر عباد اللذین یستم آمونن غور پایستگون احسن هست سخنان رو بشتاییم به سر انتخاب کنیم پیروبی بکنیم بنابراین تعصب و یک جانب نگری و قبل از این که برهانی بیارن نتیجه رو قطعی بدونیم و بعد مثل وکیل که از یه جناتکاری یا از هر مجرمی میخواد به هر نحوی دفاع کنه دفاع کنیم از اون حرفامون خب این ممکنه دوتار اشتباه بشیم و خیلی اشتباهات از این جان میشه من این مبنای ما در شروعه عرض کنم که به مباحث توحیدی قرهان است و قرآن نه تأثب نه اگرم اعتقاداتی داریم فیلن اون اعتقالات رو در بحث برهانی کنار میذاریم تا ببینیم برهان به ما چی میاموزه و رو به کجا میرسونه اون سروجای خودش کافر که نشدیم ولی به هرهاد مثل خیلی کسانی که ارز کنم که به مسائل رسیدن ولی دخالت نمیدن اون مسائل رو در تحقیقات علمی شد و تحصوب نمیبرزن به هر حال این است که من میخواستم بکنم به نظرم بعد وقت من تمام اما سوال خصوصی اگه زندگی موناه با عقل باشه خیلی خشک و بی‌مزه میشه ما گفتیم که 80 5 درصد, درصد خانم هر هر, هر نیروی, نیروی مجرای خودش رو داره بحث ما این بود که مباحث توعیدی رو با استدلال عقلی و با اتکاب قران من نگفتم دل جا بند دست کنار جای خودش بره مباحث توحیدی رو میخوایم با دلیل برهان ثابت کنیم و اذن اونم که متوکل به امام زاده بشه میگه دل من رفته پیش امام زاده آजत میده از موضوع خارج نه موضوع این که مباحث معرفتی ملتکی به عقل و وحی برای عقل تحریف های مختلف شده که این تحریف ها با هم قابل جمعه مخالف با هم نیست. یکی این که عقل قوه است که رو درک میکنه مثلا تک تک انسان ها رو حس میبینه ولی انسان به معنی جسم متحرک زنده مرید دارای قبای پنجگانه این معنی تو خارج نیست مگر توی داخل در جزیات هست این یک کلیست که تو مغز انسانه درسته؟ این کار حس نیست چون این نمیگه رنگش چه دور باشه نمیگه شکلش نمیگه چند ازش میگه جسمون پیون متحرکون مریدون لهو قوا خمسه این انسانه تعریف انسان. این چنین چهی به این صورت در خارج نیست با گوشت و پوست و رگ و رنگ و شکل و خصوصیات معین هست این تو عقل ماست اول اینکه عقل مجرد سازه کلی سازه جز مشترک ها میگیره مختلف شد جدا میکنه اون کلی تو ذهنش نگام میذاره میگه این انسان علی پنس دوم عقل آقا بندیشه حس فقط اینو میبینه عقل میبینه که مثلا یارو افتاده کنار جو معذر بخواب آب دهنش چند در آمده قش کرد اونجا بگه این هروین کشته مثلا پس ما نباید کار رو کنیم شو اینطوری میشیم حس دیگه این استدلال رو نمی حس فقط همه یارو رو ببینیم بنابراین عقل آقبتندیشه دو عقل کلی سازه عقل آقبتندیشه سوم، عقل رابطه بین اشیا ایجاد میکنه روابطی که دیدنی نیست مثل اثر و مهم مثل جازده مثل داقفه مثل فلان که به حس در نمیاد عقل اینا رو تشخیص میده بنابراین عقل امور نامرئی رو هم کشف میکنه درک میکنه خلاصه تعریبهای مختلف از عقل شده اینا همه با هم قابل جمعه هیچ کدوم با هم دیگه متزاد نیست عقل هم آقو بندیشه هم کلی سازه هم پیوند های نامری رو کشف میکنه تمام اینا هست طریب های دیگه هم کرد بنابراین اشکال نداره که یه پی عقلی پی عقل رو یه جوری میگه وقتی که اشکال داره که اینا با هم دیگه برخورد داشته باشه پس ما نمیخواییم بگیم عقل پردی از عقل جمعی بالاتره ما میخوایم بگیم عقل به طور کلی چه جمعی باشه چه فردی باشه حقایقو رو کشف میکنید حالا یه ای خود بیشتر به که یه خود کم تنید سلام علیکم و